حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردا یه روزه بهتر علا کبادارت چون بلدی بخندی با چشم دل ببازیم با دل ببندیم ازبا که دل سبزه پیچیده توی دنیا از آج موج شادی تا فردا و پس فردا نجوا به درب سبز پیچیده توی دنیا از آج موج شادی تا فردا و پس فردا سلام علیکم حالا حوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ چه خبرها خوش میگذره؟ همه چی خوبه؟ ما هم خوبیم شکر الان میگم که امروز میخوایم راجب چی حرف بزنیم امروز می‌خوام در مورد شعارهایی صحبت کنیم این هفته خب موضوعمون اصلا شعارزدیه و امروز می‌خوام در مورد شعارهایی صحبت کنیم که مصرف داخلی دارن البته تمام شعارها به شکلی مصرف داخلی دارن, دارن. منظورم اینه که می‌خوام در مورد شعارهایی صحبت کنیم که در مورد موضوعات داخلی خودمونه و کاری به آمریکا و اسرائیل و بقیه کشورها نداره پس اجازه میخوام در ابتدای این برنامه یک سلام ویژه داشته باشم خدمت همه اون دوستانی که در انتخابات پیشرو شرکت کردن و این روزا به شدت مشغول کناره هم گذاشتن کلمات قشنگ و ساختن شعرهای تو دل برو برای جلب نظر مردم و البته یک سلام مخصوص هم میکنیم خدمت برادران و خواهرانی که اینقدر در این سی سال مشت گره کردن و در مراسم و مجالس و تظاهرات های مختلف شعار دادن که یعنی دی شبام دیگه با مشت گره کرده میخوابن اینا تو خواب هم اگه حرف بزنن از اینجوری حرف میزن <تصفيق> ای رهبر آزاده آمازه آماده بای اگر خامنه مثلا تو این مایه ها اما از این حرف که بگذاریم سخن غذا و شکم خوشتر است دیروزی که گذشت نه دیروز تا الان چندین شرکت کننده برای استیک کار فرستادن شرکت کننده از نقاط مختلف ایران شفها ها یا همون پروڈیوسر های غذا های شما برای انتخاب برنده این استیک کار آسونی رو در پیش نداشتن اما خب شنونده های ما هم برای خودشون حدسیاتی داشتن در مورد استیک شرط میبندم این سوژه قضاهای ایرانی کار خود جلاله از نوشته هاش معلومه که خیلی شکموه فلافلو با دوتا نومبربری اضاف میزنه زده رو دست من <تص> شنونده دیگه ای برای برگزار کننده های استیک اظهار نگرانی کرده بودن و پیشنهادی داشتن برای بهتر شدن برنامه فرشید اینکه ما زنگ بزنیم از قضاهای خوشمزه بگیم که بدتر شنجس پسسی شما که شما هر روز به ما منوی روزانه بدین غذا های درخوااب براتون میفرستیم و برای تو هم هر روز شقدر میفرستیم برای هم شرقم پلو و خورشته شرقدر میفرستیم و اینکه چرا که نه ما انقدر دوستتون داریم اصلا هم شعر نیسته اصلا فکر نکنی یه درصد چهارره. سینا هستم از ممنونم از سینا، اما های ما بعضیاشون در کاری که فرستادن ما رو از لحجه زیبای خودشون محروم کردن متأسفانه. با لحجه قومی نمیخوام حرف بزنم. غذای محلی اینجا هم آبگوشت خنویته تازه اونم لپ پشته مون. آره. یمگه جا دارید منم بیام بغل الی مرسا که اومد می‌خواید منم بیام. جمعمون جمیشه. خوش می‌گذره خوش. خیلی ممنونم. حالا شما فعلا به غذا برسید تا شاید یکیت شرکت کننده هایه. استیک باشید. دسی بودن که با ما به شدت احساس همدردی کردن به خاطر اون نام گشتگی که دیروز گفتیم. درد اصلی خود ما اینجاست چیه؟ بچا چیه؟ گشتگی، آقا گشتگی، گشتگی، گشتگی، یعنی حرف به دل منو زدید. یعنی من از صبح که از خواب بیدار میشم، دارم فکر می کنم صبحونه چی بخورم، بعد که صبحونه رو خوردم، همش باید فکر کنم که حالا ناهار چی بخورم، ناهاری که خوردم، همش باید بکنم حالا شام چی بخورم. بعد شام که خوردم، دوباره همش باید بکنم که حالا فردا صبحونه چی بخورم. یعنی اگه تمام این فکرایی رو که روز غذا خوردن اون اینکه چی بخورم و چی کار بکنم صرف علم دانش کرده بودم الان داشتم تو ناسا آپولو هوا می کرد بله اما بعد از پشت سر گذاشتن همه پیشنهها و نگرانی ها وحت ها میرسیم به استیک امروز جایی که چندین شرکت کننده روی گاز استیک میان و بهترین غذاشون رو برای ما معرفی میکنن و شفا و پرویدیسر استیک هم اونا رو قضاوت میکنن. نخست یک معرفی از پرویدیسر استیک. ممنونم پروژیوسر اول سعید ببینید قضا فقط یه چیز خوردنی نیست قضا اون حسیه که آشپز با آدم ها منتقل میکنه ممنونم سعید پروژیوسر دوم مرسا من همیشه گفتم که قضا خوردن یه پروسس نه پروژه واسه همین آدم همیشه باید در حال خوردن باشه بله ممنونم و اما پروژیوسر سوم شهرام مانو هم کلن طرفتر همه کسای از که خوردن جدی میگیرم ممنونم اما پروژیوسر بین المللی برنامه یعنی خود سامی برحال همه میدونن که بهترین غذا از پشکری فرانسوی. میاد فغانسه و پروژیوسر آخر جلال ببینید اتفاقی است که میابدد به نظر من برابر اینجا فقط یه مسابقه است، و من فقط اینجا هستم تا اتفاقهای خوشمزه شما رو بچشم ممنونم از همه پروژیوسرها و شفهای برنامه قبل از اینکه بریم سراغ شرکت کننده های امروز یک تنفس کوتاهی می‌گیریم و دوباره تا لحظاتی دیگه با شما خواهیم بود برمیکردیم آیا در شهر روستای شما غذاهای خوشمزه و خوشعتر فراوانی وجود دارد؟ آیا فکر می کنید غذاهای شهرهای دیگر در مقایسه با غذاهای شهر شما هیچی نیست؟ آیا دوست دارید خوردنی های خوشمزه منطقه خودتان را با دیگران تقسیم کنید؟ استیک است تا شما به غذاهای خوشمزه شهر و دیار خود فرصتی برای مطرح شدن می دهید با حضور در استیک و زیر نظر استادان خوششته های استیک شما نیمی از راه موفقیت خود را طی خواهید کرد استیج مسابقه برای شما که خوشمزه ها را فقط برای خود نمیخواهید. در استیک шеف ها و پرودیوسر های خوش و مزه شناس ما شما را به بهترین شکل هدایت می کنند تا بتوانید غذاهای مورد علاقه خود را به دیگران معرفی کنید. هر غذای خوشمزه، هر لهجه محلی و معرفی هر رستوران یک امتیاز. استیج از رادیو پسوردا فرصتی است برای نشان دادن قابلیت های غذای شما و شهر و دیارتان استیک. بله بریشتیم بازم اما قبل از اینکه بریم سراغ بذاریم بگم توی این برنامه چه کار کردیم اول اومدیم و پروڈیوسرهای یا همون شفه های برنامه استیک رو معرفی کردیم و شما حالا میرسیم به شرکت کننده اول اولین استیک. سراغی ملافی یکی از رزوی معبوب و لذیز بوشهر قلی مویه و هم نهر قلی موینیا قلی مویه, قلی مویه که خود موی ساعت 5 صبح دیریا گرفته باشی داری خونه ویدسناک پاکش کنه تا ساعت 6 دیگه موی کو تو دیگه واسه بعد شام وقت ساعت 8 زور و اجاق باش قشنگ لا بنداز بفهم چه داری می‌خوری قلی موی داخل رستورانا 10 دقیقه میره دست چه به چن از بوشهر بله ممنونم از این دوستمون از بوشهر که بر حال کار رو ارائه دادن مرسا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 دوست عزیز اونجایی که قضایت لعاب مینداخت و من خیلی دوست داشتم و به عنوان یه تحیه کننده شخصا حاضرم که قلیه ماهی شما رو پروڈوست بکنم ممنونم جلال عزیزم اگه دقیق کنی اون ماهی که تو قلیه ماهی شما بود و اولین بار جد پدری من پخته بود <تصفح> به افتخار جد پدری شف یا همون پروڈیوسر برنامه به <تصفح> افتخارش <تصفح> ممنون متشکرم و ما بریم سراغ شرکت کننده دوام علاو اسلام و حالتا جان یک دیزی داره آب دیزی آب گوشت داره توی گاراج داره اسم ما محلش داره دیزی ها چقدر خوشمزه که خدا میدونه یا کن ساعت یک و نیم نه دو بره دیگه تمومه دو بری دیگه دیزی نداره ولی دیزیاش دیوانه hey. نگاه کن یک دن دیزیش میگیری سه نفر سیر میکنه به قران محسنم از ماشا <تصفح> <تصفح> ممنونم حسین جان سعید محسن جان رو <محسن> من خیلی دوست داشتم آفرین لذت بردم ادامه بدین بهترم میشه ممنون شهرام کلا که شکم خوب هستی دوست دارم این جور چیزایو با دمت گرم خوشم اومقزات خوشتون اومد شهرام جان از غذای شما مرسا محسن این بهترین غذایی بود که من امروز دیدم اصلا انگار تو خود دیزی فروشی بودم موفق خوشی خب ظاهرن قضای شما نظر شفا و پروڈیوسرهای ما رو به خودش جلب کرده بریم سراغ شرکت کننده سوم. سلام خوب غذای مدرق من و در واقع معشوق خوراکی من اسمش کابتابهی با کباب کابتابهی که کنارش یه رو بیام تفت بدی و بعد روب برد بپاشی دو کبابا و از این وقت گوجه سرخ کنی گوجه همچین رنگش رو پس بده به روغم بعد دیگه تدیگ سیب زمینی نام که دیگه نگم براتون امیدون پروڈیوسر های برنامه از غذای من حمایت کنن جنس غذا قضا رو دوست داشته باشن ما زیر شعله رو واسه شما کم می‌کنیم تا برسید مریم عتبهدان به به خیلی ممنونم مریم جان جلال قربونت <متصح> برم انقدر شما خوب با این غذا ارتقاط برقرار کردی و توصیفش کردی که به نظر من شما بیا اینجا جای من بشینید پرودیوسر بشو من برم کباب تابه‌ای تو رو بخورم دمتون گرم باور بله مرسا مریم جون معلومه که شما یه شکموی تحصیل کرده هستی من حتما دلم می‌خواد که کباب تو رو بخورم بسیار خب بریم سراغ سعید مریم جان با اینکه غذای سادهی ای انتخاب کرده بودی ولی تونستی 100صد درصد مذت رو بذاری تو کار با اینکه سبک کار من نیست ولی بهت طری مثبت می درسد. خوب خب کشمختانه این شرکت کننده تقریبا میشه گفت برای مثبت پرویدسر های ما رو به خودش جلب کرده بریم سراغ شرکت کننده آخر امروز شرکت کننده چهارم. سلام جان یه غذای هستش بر خط اسمش جوشواره است. البته هرکسی دوستش نداره منتقه من بین نهایت دوستش دارم خیلی هم باش حال میکنم حالا خواستی برای تصدر پختشو میفرستم درست کن بخور حالشو ببرم چشم ممنونم فقط خیلی یه صحبت کرده بودن حالا نمی‌دونم چرا بریم سراغ محرسا ببینیم نظرش چیه به نظر من اجراشون ناقص بود چون نه از تعمش گفتن نه توضیح بیشتری دادن ما اینجا دنبال چیزایی بیشتری از دوست داشتن شما از غذا میگردیم من کارشونو متاسفانه دوست نداشت متاسفیم سعید دوست عزیز منوی کار خیلی مهمه توی کار ما از منو غافل نشید لطفا بلی زهران نظر سعید رو هم جد نکردید چهرام نظر هم بدون لحجه توضیح دادن و برای ما سابقه آماده نبودن آمده. ما نپسندیدم نپسندیدن و جلال ببینید من رنگ صداشونو و خب طبیعتاً قضاشونو دوست داشتم ولی با همکارم موافقم هم که باید جزیات بیشتری رو محسن میکرد بسیار خب ممنونم از همگی این هم شرکت کننده امروز و استیک امروز همین شرکت کننده ها آماده باشن برای اینکه که آخر این هفته ببینیم که نتیجه چی بوده و کدوم رأی بیشتری رو میارن بله به پایان اولین استیج رسیدیم. اینو بدونید که برای شرکت کردن در استیج هیچ وقت دیر نیست. خطوط ارتباطی ما از همین الان باز هستند. اگه میخواید در استیج فردای این برنامه سهمی داشته باشید، عجله کنید. توجه داشته باشید اگر غذاها رو کامل اما کوتاه و با لحجه محلیتون معرفی کنید، شف‌ها و پرودوسر‌های استیج به شما توجه بیشتری خواهند کرد و امتیاز بیشتری کسب می‌کنید. یادتون باشه. از استیج تا شما فقط یک گاز اونم نه وجاق گاز بلکه گاز واقعی فاصله است تا فرد و شب و یه استیج دیگه خدا ایرانو دوست دارم که تو شهر ونده شی، اش بی کنم با شهری که تو ناس نامت، هم پاییز تو نصف جهان منی. ببین چقدر گفت گفتنات، دستشتنات راحت جاده چالوس من رو پیرهن زاوار. قشنگ تو تو دنیا فقط یه رش داره طبیعتت من و تا تو دل کیش میبره دیدن یاد مرکز اصلا خود را سره بیشال رو سرید بی پرچمم گمم فرقی نداره که اهر کجام کیم چشمات خلیج فارس از داد کبیر لود اقرار میکنم من ایرانیم ایران من بخم عشقت پرم کنم عطر بفی چطور جغرافیای من تو کشتر وری قلب جهانمه تأثیر داری رو آب و هوای من خب بله ما به تو خدافظی نکردم خدافظی از اون برنامه استیک اون بخش استیک اصلا کلا یک بخش دیگه اله اسمش هم چه استیک استیج بخاطر اینکه اسم غذاست است یعنی حالا دیگه اسم اولین چیزی که به ذهنم اومد از غذا استیک بود دیگه خیلی هم خوشمزه است ولی ایرانی نیست ولی خواست خب شما میخوایم که از سر تا سر ایران از هر جایی که هستید تو این برنامه استیک شرکت کنید با لهجه محلیتون هر چه بتونید کوتاه‌تر توضیح بدید و با لحجه محلی توضیح بدید و اگه رستورانی هم مد نظرتون حتما بگید کجا دورو براتون هست امتیاز بیشتری میارید بریم سراغ برنامه خودمون بابا. پس با با رادیو پسورده مونده رو هوا ها رادیو پسورده 979 امروز یک شنبه 18 بهمن 1394 میره سراغ شعار با مصرف داخلی دلخوشی به وعده های سر خرمن بیامیگه شماره 979 بدانید و آگاه باشید که وقتی در کشور شما ادهی هستند که از صبح تا شب شعار می دهند و از شب تا صبح هم روی شعارهای روز بعد کار می کنند پس شما در یک کشور شعار زده زندگی می کنید و حتما باید طوری رفتار کنید که همیشه برای هر کاری چند شعار حاضر و آماده در دست داشته باشید تا یک وقت خدای نکرده کم نیاورید که در این صورت از بسیار کم شعار دهندگانید امز خودمون و خودتون و خودشون همیشه با همواره و همه جا برای شعار دادن همه جور پایه و آماده های راژیو دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا دیدم دمدمی مزا چرا شدی تو حادثات نکنه تو فکر اکبری اگه بری در بدری فرشید پیمان شکن اعدام خواهد گردند فرشده پیمان شکن ادام خواهد گردند شما اولو تنها میذاری سامیو تنها میذاری رفیقای ایرانی رو تو دنیا تنها میذاری فرشید پیمان, پیمان, ادام باید. باید. ادام باید پیمان شکن اعدام خواهد گردند فرشده پیمان شکن خیلی ما نیوز فرش جان سلام, سلام. شعارهایی که شنیدیم بله. در جمع کثیری از اهالی تهران دیشب و پیرو تسنیم تو برای رفتن صورت گرفته این خوفا. مردم شریف انزجار خودشون از رفتن تو اعلام کردم و قرار این تظاهرات همچنان به مدت 22 روز ادامه پیدا کنه مرجان هستم از تهران خیلی ممنونم از شواراتون ولی اینجوری هم فکر نکنین فقط خودتون بلدین شعار بدین بچه‌ها آماده این بچه‌ها آماده ای. بله همه بله. آماده این 1 برو منافی اعدام بشه فردا میشه منافی بشه میشه منافی بشه دیامت بله خیلی ممنونم میشه. خوبه عالیه حالا اون یکی برو بریم یک دو سه برو اهل بهراگ نیستی تنها به ما اهل تهراگ نیستی فرشت تنها بمونند بابا لپه اینم تجمع پرشور هواداران بنده در پراگ و داخل استودیو شوخی نیست که همینجوری فکر خودتون واس خودتون شوهر میدین و اینا ما اینجا هیچ نیست هیچ خبری نیست ما هم اینجا برای خودمون ملت خود جوش داریم بابا ملت خود جوش پس فردایی دمتون گرم سوال کرده بودیم از شما چه سوالی کردیم؟ خوشش من اینجا نشستم یادم رفت. سوال کرده بودیم که اه... چه سوال؟ اگه... اگه کسی یادش بود ما چه سوالی کردیم؟ یکی اینجا بگی ما س... سوالمون چیه؟ من نمی‌وردن متن سوالو. اگه گفتین، اگه گفتین ای خدا، ای خدا اگه گفتی ایو اگه... تو خودت بیشتر از همه شعوار میدی والا این همه طرفدار و شنونده رو میخوای وایر کنی هی hey, هم داری رو معکوس میدی این برنامه درت دیگه 20 دیگه یعنی چی خب نمیخویم تو بری اگه اه... برنامه دیگه‌ای داری بعد رادیو فست فردا مرسی مرتضی از تهران خیلی ممنونم اه... والا شب میدونم دیگه اینا شعوار نیست والا برنامه داره جدی جدی تموم میشه دیگه دیگه باید بدونین که الان به فکر دوران پسا پس فردا باشین دیگه یعنی دیگه گذشت دوران پس فردا داره میگذره داره میره تو پسا پس فردا حالا که بعدش چی میشه با ایناها راستش دیگه همش در حاله از ابهام قرار داره مخصوصا دیگه پایان رو باز گذاشتیم دیگه هر که هر جور دوست داره دیگه فکر کنیم بله از شما سوال کرده بودیم که این هفته بهمون از تجربیات و خاطرات خودتون از شعار دادن بگین و بگین خودتون چقدر اهل شعار دادن هستین یا چقدر شعارها روی زندگیتون تاثیر گذاشتن و هرجوجو بزر... حالا گفتیم شعار ها میتونه مثلا شعارهای سیاسی یا انتخاباتی باشه یا مثلا شعارهای فرهنگی مثل ترویج و تبلیغ حجاب یا حتی شعارهای ورزشی و تشویق تیمتون یا از منبردن روی تیم حریف در حال ببین از مملکت ما از شیر سماور انا خاور گرفته تا توپ تانک اوباما و اینا تو شعارا هستن یعنی میخوام بگم شما خجالتی نباشید بگید تا حالا چقدر شعار و شعار دادن روی شما تاثیر گذاشته یا برعک شما تونستید با شعار دادن روی کسی تاثیر بذارید فرشید جان میشه یه لطفی با کنی به جای کلمه سلام از این رو بعد بگی درود ممنونت میشه هم خسته بودم بودم بگم دیگه حالا اینم شعار ما بود بله. چرا آقا جان من فرشید منافی هم به خدا با کسی که بندر اجتباه نگیر اینا خواهشن من همیشه میگم سلام همیشه همینطوری میگم سلام همجوری راحت هم با سلام دی وقتی آدم میگه سلام پشمندش هم میگه خوبین خوشین بعد همجوری خیلی راحت حالا احوالا اینا میکنه دیگه ای بگی درود بعد بعدش بعد مثلا بگی فرخنده هستی فجاست میبابشی کلا سخت میشه قضیه ذره اینه که خیلی ممنونم از تماستون ولی من با همین سلام راحتم ام دیگه همینه که هست آقا همینه که هست والا بچه ها تلفون ها هم یه بار بگین لطفا من اینجا ندارم این تلفن ها هم هشت نیستم بله تلفن های ما دو سف چار و بیست دو دو و بیست برای این خب که داخلی <تصفيق> عجیب. یه جور دیگه همیشه میگفتیم فکر <تصفيق> کنم نه یه جور دیگه میخوندیم قبلا بیس، دی برای این که داخل ایران هستن برای این که داخل ایران هستن دوست شمارهی دو که بچه ها گفتن میتونین تماس بگیریم هم راجع به موضوع این هفته همین که در استیک شرکت کنید دیگه راه های ارتباطی ما همین اونایی هم که اپلیکیشن راژیو رو دارن آیو هاش میتونن میتونن صداشون رو برای ما بفرستن بله یه شماره شماره دیگه هم هست برای ایمیل کردم و یا تلگراممون که 2420-602-33-823-777 این شماره تلگراممونه بله. یعنی میتونید بفرستید صداهاتون رو یا حتی میتونید از, از, از این قضاهایی که درست میکنین اکس بگیرین فیلم بگیرین برای ما بفرستین بله. آره. این کارم میتونید بکنید شماره تلگرام ماست میتونید عکس ها فیلم ها صداهای خودتون رو به این شماره به تلگرام ما بفرستید فدادشم فدادشم فدادشم بیا نزد جلو دستم خرابشم خرابشم خرابشم بیا اسم تو تو قلبم نوشتم نوشتم بیا رزا عاشقتشم عشقم عشقم بیا منو کاشتی باز اینجا تو زیر بار عاشق شدم منو رو مارو دوباره تو ازورت تو دستام چند ساله به پای پاتو نشستم لایک لایک لایک داری این چشای خطرناک داری لایک لایک لایک داری این چشای خطرناک داری دلخرمو میبری قه محره مار داری آخه محره مار داری <متصفح> دوباره خبردار خبردار خبردار شدم چه بازم از عشق اپدار تپدار شدم میخوام با قلبت تبانی تبانی کنم که تو رو دوباره روانی روانی کنم منو کاشتی باز اینجا تو زیر بارو عاشق شدم منو رو مارو دوباره دست تو بزار تو دستم چند ساله به پای تو نشستم لایک لایک لایک داری چشای خطرناک داری حالا لایک لایک لایک داری خطر خطرناک داری شما آقایون دخترخانم آقا پسرا شما چند تا کشور سراغ دارین تو دنیا که وزیر شعار توشون وجود داشته باشه به جز ایران چند تا کشور سراغ داری؟ حالا نه که لزومن یه نفر تو کابینه با این عنوان باشه نه اینجوری که طرف انقدر کار شعار دادن باشه انقدر از نظر مقامات نظام در زمین شعار دادن قوی باشه که بین مردم معروف بشه اصلا به وزیر شعار خب متوجه شدید داریم در مورد آقای محمود مرتضایی فر حرف میزنیم که بهشون محمود چوار هم میگفتن تو سالای اولیه بعد از انقلاب و ایشون کارشون شعار دادن بود تو مراسم مختلف مملکتی با هم صدا بی خروشیم بر فرمی آوریم امریکا مرجد با مرجد با امریکا داییم بله این بند خدا که خب همین یک دو سال پیش هم فوت کردن و آجاقا جنتی هم تو نمازی جامعه ازشون حسابی تجدیل به عملها بردن از 79 سال عمرشون 35 سالشو از انقلاب تا دم مرگ به طور خیلی رسمی شعار میداد مردم هم تکرار میکردن قبلش هم حالا حتما ایشون در جریان مبارزات انقلابی شعار میدادن دیگه تا انقلاب پیروز شد دیگه اینه که آدم واقعا کف میکنه که یه انقلاب و نظام بر اومده از اون چقدر قابلیت شعار پراکنی داره واقعا الان بعد از فوتهشون هنوز نظام چهرهی به این قدرت و پای مردی در عرصه شعار ارائه نکرده که بیان به میادین ولی خب بازم به نظرم کار هر کسی نیست این پرورش چهره شعاری دیگه خلاص آقا خانوم دختر خانوم آقا پسر هیچ بعید نیست یه چند وقت دیگه ما به خارجم لژیونر شعاری بفرستیم از ما گفتم بود پس وردا دیدین نگین نگفتینا ما گفته بودیم پیش ما بیار میگه پیش ما بیار. پیش ما بیار فری برز قریب سلام چه خبره سلام فرسی جان تیم تو بردار و بیار این هم یه شما بردارم شین دردشی ها از هم حضورت که کمیسیون عرض نوود مجلس شورای اسلامی شمشی رو از رو بخت واسه رئیس فرداسیون و رسمن عدیه چپاشیون رو تو پرونده افتفاد در کتبات به عنوان متهم ردیس اول معرفی کرد به این صحبت‌های آقای پورمختار رئیس کمیسیون ارشد 90 گوش بدیم که به گفتن. گفته. مسائل فساد خیلی ریشه‌دارتر از این‌ها هست حالا ما فعلاً بخشیش رو عنوان کردیم و خدای کفاشیان بالاخره عنوان متهم ردیف اول باید پاسخکو باشن و حتما انشالله در محضر مراجع قضایی پاسخگو خواهند بود. شمسشری هم بستن. واکنش آقای کفاشیان چی بود فریدورس؟ استاد کفاشیان با همون لبخند همیشگی اول گفته اگه من متهم ردیف اول باشم باید قصاص فرص بدم و بعدشم به سیما اینطوری گفته گفتن فساد هست گفتن فساد نیست پرونده قانونم باید بره به قوه قضاییه و در قوه قضاییه قطعا اونجا دیگه الحمدلله بر اساس صحبت کردن و مداره که غیر مستند صحبت نمیشه بله این خون و این لبخند و این شوخ طبعی آقای کفوشیان واقعا قابل تقدیره. خب بریم سر بازی بازیای امروز لیگ فریب تیممون چه کرد؟ حواشی بازی‌ها چی بود؟ تیمت که سرش تو اصفهان با ذوب دو 2 کرد اما یه بازی خیلی تاکتیکی و فنی و جذاب و هیجان عذاب در اومد. تیم جلال هم مساوی کرد با تیم صیاد جدول اما یه خبر حاشیه‌ای جالب بود از تیم پرسپولیس امروز مشغولان این تیم تصمیم گرفتن که تعدادی از لیدرهاشینو یعنی همون مسئول شعاراشون رو بفرستن خارج به کشورهای سایر فوتبال برای الگوبرداری از شعارهای خارجی ها و <تصفيق> الگوبرداری از فرهنگ هواداری خسته بچن دیگه به هر به برنامه ما یه ارتباطی داره این شعارزدی یه جورایی دیگه حالا تا حالا لیدر لژیونر نداشتیم که اونم ظاهرا خوب شکر خدا پیدا شد آره همین امروز هم گفتن که این شعار و این هاست فرجی جام فردام کلی حرف حدیث داریم در مورد موضوع برنامه شعار و اینجور حرف های که اصلا ورزش بدون شعار معنی نخواهد داشت. بله فردا رجب شعارهای فرهنگی و شعارهای ورزشی صحبت میکنیم حتما از فریبورز عزیز و از کامران هم کمک میگیریم ممنونم باید می کنم تا فردا تا فردا خدا نگهدار. با سلام 23 کسیه یک شب را زمن تحیل از انتشار شایعی گرفتن تحهل از اعضای لیست انتخاباتی اطلاف اصول گراویان برای ریابست حداد داودل بر مجلس آینده، با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می از اظهار نظر محسنی جعی با این مضمون که پرونده جیسون رضایان هنوز بسته نشده است و تحسین کارشناسان از ایشان که ایشون از تکوتا نمی طرفو طرف و ویل کردن الان امریکا ولی اینا نیستن. شش برابر شدن پهنای باند اینترنت در ایران در آبینده و پیشبینی ناظران که خب پس پهنای باند فیلترین اونم دوازده برابر میشه و پیشبینی یک شکست سنگین برای اصول در انتخابات آینده از سوی محمود احمدینجاد و نظر فعالان عرصه شکست که این داشتن رانتشون میخوردن شما آمدی باشون قاطی شدی به این روز افتادن؟ <متصفيق> <متصفيق> مهمترین نناوین خبری ساعت گذشته را شامل میشدند اینک مشروب خبرها با چهچهی همکارم بلی بوی با سلام مشاور حقوقی شورای عالی استانها گفت شورای نگهبان تأیید کرده که تعداد اعضای شورای شهر تهران از یک نفر به بیست و یک نفر کاهش پیدا کند در همین رابطه یکی از کارشناسان امور شورای شهر کشور به خبرنگار ما گفت با توجه به اینکه در حال حاضر در شورای شهر تهران از وزن بردار پشتیگیر و تکواندوکار گرفته تا خاننده سردار سابق و سیاست مدار حضور دارند باید دید این افراد برای انتخابات بعدی که ده نفر از اعضای شورا کم می شود چطور میخواهند با هم کنار بیایند وی پیشنهاد کرد به عنوان مثال پوشتگیران شورا برای دور بعد با یکدیگر در خاک رقابت کنند و هر فردی که توانست اشکل گربه ای آقای میکروفونت این اشکل گربه نه پس اشکل اولاغی دیگه بلی بله بله بله بله با پوزش هر فردی که توانست اشکل گربه بهتری به حریف وارد نماید به شورای شهر راه یابد پایان مرشوه اخبار بله ما هم تشکر از شما تا دیگر و برنامه دیگر و بلبلی دیگر خدا نگهدار خدا فضایی میکروفونت طلا چرا گریه میکنی چرا اینطوری میکنی بل دکتر زده پای چشم تو کبوت کرده؟ نه. مادر شورای تو زندگی دخالت بیجا میکنی بولبول. آقا میکروفون تعال چی میگیم شما؟ ببین من طاقت عشق تو رو ندارم بولبولا. بگو کی گریه تو درآورده برم مادرشو به عزاج بشونم. بگو ببینم. شورای نگهبان. ببخشید. شورای نگهبان اشکی تو درآورده یعنی چی؟ بله رد صلاحیتم کردن. ایه. یعنی تو کاندیدا شده بودی بری مجلس مگه بولبول؟ بل. بله. ببین من فکر کنم در این مورد خاص بولبول شورای نگهبان درست عمل کردی واو یعنی... انگه چیزه چرا مگه من چه آقا میروفون صلا ببین دیگه یک سری قابلیت ها هست که خب ما آدم های پخته و با تجربه در طول سالیان دراز به دست میاریم گیری نکن اینا رو تو نداری خب دیگه دختر ای... مملکت ساب داره شورای نگهبان حواسش به همه جا هست این پلیس فتا ای... اتفاقا دلیل رد هم همکاری با شما آقای میروفون صلا جان به خاطر من واقعاً به خاطر منه؟ بله من میخواستم صدای زنان ایران باشم به خاطر مشکلات اخلاقی شما نشد ببین من از اولش هم میدونستم شورای نگهبان با نظارت استثبابیش این انتخابات رو به جند میکشه ببین؟ ایه. ببین چیه گفت الان که شما داشتین دفاع می‌کردین ازشون گفتین خواستشون به همه دا هم این شورا غیر قانونی بل, بل من تا آخر عمرم منتقد این شورا خواهم بود باشه حالا شما راحت باشین من بهترم بهتر خب خوش باشی یعنی من نمی دختری میخواد صدای زنان ایرانی باشه گرفتن خفش کردن صداشو خجالت هم نمیکشن 65 سال پیش در چنین روزی مصادف با هجده همه بهمن ماه سال 1222 هجری شمسی روزنامه ی اتفاقیه به کوشش میرزا محمد طریقان فراهانی یا همان امیر کبیر خودمان منتشر شد گفتنی سمیر کبیر وقتی داشت مقدمات انتشار این روزنامه را فراهم می کرد که یک روزی انتشار روزنامه برای روزنامه نگاران مستقل میتواند به دریافت اتهامات چون جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، تجاوز به عنف، مشروب خاری، برقراری روابط نامشروع، پاره کردن عکس امام و جردادن بیانات مقام معظم رهبری منجر شود. مورخین معتقدند اگر امیرکبیر بیچاره این چیزها را میدانست که خب خودش نمیگذاشت رگ دستش را در حمام فین کاشان با تیغ بزنند. جا رادیو پسفردا فردا صدای ما را از رادیو فردا میشنوید ۴ سال بود که پلیس ایران یک فردی رو به اسم عیسیا بشاگردی یا کنم دستگیر کرد که اینجوری که گفته شد از های دونه درشت ایران بوده و لقبی هم که بهش داده بودن تمساح خلیج بوده دیروز رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر در مورد پرونده این آدم و گردش حساب این آدم یه صحبتایی کرد که بعد از شنیدنش ببین این موی تن من سیخ شده همجوری سیخ مونده اصن یه وقت. بچه ها شاهدن اینجا گوش بدین من قول میدم موهای تن همه سیخ بشه گوش کنی آخرین پر... نتیجه ای که من از پرونده عیسای بشاگردی یا تمسای خلیج داشتیم بیش از 20 هزار میلیارد تومان گردش مالی این عنصر واقعا پیچیده و مافیایی هستش که در سطح کشور ما متاسفانه اتفاق افتت سیخ شد؟ نشد؟ آقا منم یا موهاتون مشکل داره یا نمیدونین این رقم یعنی چی؟ آقا مگی آقا 20 هزار میلیارد من تقریبا منزه کل بودجه نیروهای نظامی ایران در طی یک ساله. اون موقع یه قاچاقچی مواد مخدریه چون چنین گردش حسابی داشته. بابک زنجانی که هیچ پابلو اسکوبار کلمبیایی هم بد در جلو بوغ بزنه. حالا تازه اینکه که تمساح خلیجشون بوده دستگیر شده. چند تا دیگه کوسه خلیج و نهنگ خلیج و خلیج و اینا هم همین الان دارن کاسبی میکنن این دیگه من نمیدونم دیگه حالا ببین فقط خدا میدونه چند نفره بیست هزار میلیار تومن شما سعی کنین وقتایی که کاری ندارین به این رقمه همینجوری فکر کنین بعد ببینین چه جوری میشه در اون قرای جهان اسلام یه قاچاقچی مواد مخدر چون این گردش حسابی داشته باشه ای فهمیدیم به ما هم بگید به خدا عجیبا غریبا چش زدین این هوای استرالیا رو که فکر کنم این پر ال نینو به انجام گرفته وسط چله تابستون همش هوا ابری و بارونیه دمای 20 25 درجه دیگه خیلی حال نمیده بری استرخ رو دریا و اینا بله خیلی متشکرم البته یه بار دیگه فکر کنم تلفن شما رو پخش کرده بودیم نمی‌دونم کی روز بود هفته پیش بود اصلا یادم نمیاد ولی آشنا بودین تلفنه گفته بودی ال نینو گفتم اینا از الینو نیست اینا الفرشیدوه یادتونه یعنی همونه اون این یعنی آهای منه که اینجوریه آه که چم این شکلی میشه حالا تا بحث حواست یادم تا یادم نرفته یه تذکر حواشاناسانه بدم خدمتون گول این هوای گرم و آفتابیه این یکی دو روز اخیر رو نخورینا یه دفعه حوث کنین پاچین بری شمال و نا این ورون ور در ادامه اون کاهش دمایی که دیروز گفتیم خدمتون و از شمال غربی ایران شروع شده همجور داره میاد به سمت شرق در روزهای آینده جادده کوهستانی قطعاً برف و شدید خواهند داشت اینه که بشینین تو خونهاتون گول هوا را نخورین خدا نکد تو برف و بهمن و باد و نگیر نیفتین چقدر دیگه ما حشتار بدیم آقا زبونو مودرها برد ان والد راجعون اطلاع یافتم که ام العرب به والدۀ رئیس جمهور محترم و محبوب سوریه جناب آقای بشار اسد و برادرانشان باسل اسد، ماهر اسد و مادر شوهر اسماء اسد و همسر حافظ اسد حاجی خانوم انسیه مخلوف پس از مدتی بیماری و تحمل و مصائب و مشکلات جسمی و روحی دار فانی را ودا گفتند این جانب ضمن تسلیت به ارادتمندان آن خاندان به ویژه مردم ایران و سوریه از خداوند متعال رحمت و مغفرت واسعه برای آن مرحومه مسئلت می نمایم و سه روز ازاگ عمومی اعلام می نمایم علی عبی معظمله یکشنبه گه بهمن ماه 1394 بله خیلی متکرم برقاق من چیز نمی بگم خیلی تماس گرفته بودن این دوستمون از شنوانده ها بودن تماس گرفتن خیلی دوت که برنامه سازی کرده بودن رسمند اما شعار و شعار دادن اصولا جز لاینفک حکومتایی که نمیتونن مثل آدمیزات حکومت کنن و مسائل پیش پا افتاده مثل رفاه و امنیت و آسایش مردمشون بپردازن و آرمان‌های خیلی گنده گنده دارن اینه که چون معمولا به اون آرمان‌ها و اهداف نمیرسن مجبورن جای خالی چیزایی که ندارن رو با شعارهای گلدروش پر کنن دیگه اینه که ما مردم بخوایم نخوایم زگهواره تا گور شعار میشنویم و این مسئله برامون عادی شده اما یه دوره هایی هم هست که حجم شعارها ناگهان به شکل تصادفی توی جامعه میره بالا مردم هم شرکت فعال میکنن در عمر شعار پرکنی و یه جوری اصلا فستیوال شعر در جامعه برگزار میشه اون موقع کهیه؟ های گفتین؟ دهی فج 22 بهمن نه اون که خب جای خود اون که هست ولی منظور من ایام انتخاباته تو این دوره ها دیگه رسما شهر زیر شعار دفن میشه حالا بازم شعارهای انتخاباتی هایی مربوط به کاندیده های ریاست جمهوری باشه خب محدودتر هستن و شما کلا مثلا 3-4 مدل چهار بیشتر در سطح شهر نبینید ولی وقتی پای انتخابات مجلس مطرح باشه دیگه تنفع شعارها و خلاقیتی که کاندیده ها برای تأثیر گذاری بیشتر روی بی مردم به قرش میدن تمومی نداره اما تقریبا همه شعارها بگیم یه سری مثلا کلمات کلیدی مثل سربلندی و عزت و رفاه و آسایش و آبادانی و امنیت و اینجور جور چیزا رو خب دارن که خب این ملات اصلی شعار به حساب میاد ولی خب یا آقا پا رو فراتر میذارن میخوان خ... میخوان مثلا خلاقیت به خرج بدن گاهی وقته زیادی خلاقیت به خرج میدن مثلا یه خانومی این دوره شعار انتخاباتی این بود من معتقدم که شیر نرو ماده ندارد آقا نرو ماده با مردم میخوان نماینده مجلس انتخاب کن باغورش مگه آقا خانم من میدونم خلاص دیگه از این خلاقیت ها تا دلتون بخواد داریم دیگه در فستیوال های شعار همجوری پیدا میشه. دل نگرانی ما از آدمی آدمیست که میخواد به چشم خود شاهد پیروزی باشد. امران ملک موتی. سلام چه خبرو از فستیوال فیلم فج سلام فارسیجان سلام همگی امروز اعلام شد که هیئت داوران سه‌شنبه شب اسامی نامزدای بخش‌های مختلف جشنواره رو تو مراسمی که در هتل لاله برگزار میشه اعلام می‌کنن آرا مردمیم تا این لحظه همونجوری دست نخ... نخورده مونده اما یک از حاشیه‌دارترین نشصای مصوباتی تو این چند روز مربوط میشه به فیلم بادیگارد آخرین ساخته ابراهیم حاتمی کیا تهیه کننده فیلم غیر مستقیم وزارت اطلاعات و کسایی که فیلم دیدن میگن به شدت یه فیلم سفارشی و احتمال برنده شدنش هم به همین دلیل خیلی زیاده اما چند تا جمله هادم که گفته که اونم جالبه یکی این که گفته سال 65 که فیلم هویتم رو توی جشنواره نشون میدادم من خجالت میکشیدم که چرا تو اون لحظه تو جبه نیستم الانم دارم خجالت میکشم که چرا تو سوریه نیستم آخی. از این شواره چیز اما جالب ترین حرفیه که در جواب یه خبرنگار داده من چیزی نمیگم با هم بشنویم بشنویم راسن ببینم که دوستان معاصرم شما نخواستید گه در واقع نمای رو واسه پیدا در نظر بگیرید که شبیه یه سردار قاسم سلیمانی در بیا چرا من اصلا به عشق سردار سلیمانی چهره پرویز بابو نزدیک کردم بله من خب با این حرف حد می‌زنم سیمرغ امثال رو احتمالی میگیره دیگه خب فردا چه فیلم های نمایش داده میشه کامرا فردا 6 تا فیلم تو کاخ جشبرا به نمایش در آزادی ساخته رضا فرهمند ممیرو ساخته هادی محقق، پل خواب اوکتای براهمی عادت نمی‌کنیم ابراهیم ابراهیمیان، برادرم خسرو، احسان بیگلری و اجداه وارد میشود مانی هستند. و از موسیقی چه خبر؟ والا خیلی خاندان داره سه روز دیگه جشنواره موسیقی فرش شروع میشه هنوز جشنواره پوستر نداره برنامه هم دونه دونه لحظه لحظه اعلام میشه یکی از گروههایی که امروز الان گفتن اجازه داره تو جشنواره برنامه داشته باشه گروه داله که 23 و بهمن تو فرانکسره عرسبران اجراش تا الان مهرت شده بسیار خب بریم بخشی از یکی از کارهای این گروه دال یا دال بند رو بشنویم با تو ام خودافزیم کنیم تا فردا کاملا نزدیس. ما فرده خودمی کرده شد که راز بودن اتا پوش بار که ساز دیدن اتا سرداد که شغل خنده اتا بار من که شعر ماندن اتا خانه، لحظه ام را میخندیدی، شما نم را میبریدی در رویایی من چرخیدم، آبوزم را میرخسیدی در رویایی من چرخیدم، آبوزم را الهام از اظهار نظر خیردمندانه دردانه عالم تنز و سرگرمی دکتر محمود احمدی نجاد که نامزدهای انتخابات مجلس را به زوجهای جوان تشبیه کرده از آنها خواسته بود تا بعد از ازدواج هم هم دیگر را دوست داشته باشند اداره کل گرم کردن صحنه ازدواج های انتخاباتی کشور برگزار می نماید. جشن بزرگ ازدواج انتخاباتی مجلس شورای اسلامی مکان هر تالار پذیرایی که بشه صندوق توش گذاشت زمان هفتم اسفند 1394 پذیرایی با استام برگه‌ی رأی، سفره‌ی گیلی و دوربین صدا و سیما پدر داماد، شورای نگهبان، پدر عروس وزارت کشور و پدر همه مقام معظمه رهبری. لطفاً همه مهمانان انگشت سبابه خود را به همراه داشته باشند. همچنین با توجه به نیاز مبرم جامعه به شور انتخاباتی، مهمانان محترم حتماً با آرایش کافی، مانتوی کوتاه، موهای شینیون کرده، برای سری عقد در مراسم حضور به هم رسانند که اصلاً هم خیالی نیست. در زم نزاوردن اطفال، بچه همسایه، سالمندان، مادر شوهر، پدر زن و هر موجود زندگی دیگری که باعث می شود حضور در دوبین های صدا و سیما بهتر جا بگیرد خودداری نفرمایید. اداره کل گرم کردن صحنه ازدواج های انتخاباتی کل کشور رسیدیم به انتها شاعر میگه خوب کرده بودم به تو به گرفتن دست هایت رفتن همیشه پایان کار نیست همیشه چیزی از آن که رفته است در آن که میماند باقی است مثل من که هنوز دست را از لابلای تمام این سالیان گذشته رها نکردم شب خوش رفت و تنها شدم تو شبا با خودم دل هره دارم و از خودم بی خودم اون که دیر و سود به قلبم نشست رفت و با قلب من را شکست انگاری قسمت فاصله هستم هر جا میری برو فل نکن هم و نزا باور کنم رفتن تقمه نزا دور شم از خودم از خدا از همه دستمو دل نکن که زمین میخورم تو بری از همه آدما میبرم تو خودت خوب میدونی که آرامشی باید با من بمونی به هر خواهشی نگاری قسمت فاصله از همو هر جا میری برو قل نکن دستمو نزا باور کنم رفتن تقمه نزا دور از خدا از خودم از همه تو که دل بردی و رفتی من که هف و خستم من که واسه کنارت بودن رو همه چشمای خیسم و بستم رفت و تنها شدم تو شبا با خودم دلهوره دارم و از خودم بی خودم اون که دیر اومد و زود به قلبم نشست رفت بار با رفتنش قلب من را شکست شکست, شکست. شکست.